اما خانم ها آقای اون دختر خانم مغب سرای احتمالاً بعضی ازون مسابقه رضا رشید پور با شجونی رو شاید دیده باشین که ایشون از یکی که بزنهاای جناه خیلی خیلی خیلی دووند هستن. ای کم شل کنید خدا آقاشون هم کافر می ایشون. یه نکته ای که خیلی بامزه بود توی این مصاحبه ماجرایی بود که مال دوران قبل از انقلاب و مبارزات هجاق شجونی توی اون دوره بود. قسم این بوده که ظاهراً اون مگا سواکیه بار هاج آقا شجینی رو دستگیر میکنه میبره توی یه خونه و سواکیه ها یه چمدون بزرگ رو میارن جلوی ایشون و آقا این چمدان رو وارونه کردن روی میس. اون میز دیدم پر شد اینقدر اکس بنده با یه خانم بله ما از اینجا جذاب میشه حالا فکر میکنید که عکس هاج آقا چی بود از دیدن این اکسا با اون خانم گوش کنید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 آقا پا شدم پا شدم پا شدم یهذرم بعد اومدم حیاط این دنبال من آمده رفتم تو حیات همون صابق اومدم تو کوچه اینا گفتن این دیوانش بله بله دو تو کوچه میشه من گاه کردن تا آمدم سر خیابان و آمد. کاری هم ندارهسب شما همین سابق سابق آمدید اصلا آقا دو قدم دنبال من آمد بعد دیگه نیامد تاکسی رو گرفتم رفتم راست منزل آقای مرحوم فلسفی بله و همین راحتی اجقاشی جی هم ج انر انر افتادن مقرسبابق اومدم بیرون بدونید که هیچکس به یادی به چند کجا میری چون میدید ساواک اون موقع ظاهرا مثل پولیس فتای الان حواسش به همه چیز نبوده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 اگه فلسفی ظاهرا حال و روز شجونی جان رو که می‌بینه شروع میکنه به دلداری دادنشون گفت آقا غلط کردن اون کسی که فیلم برداری کرده غلط کرده سلمان فارسیه میره تو مصطرا چنينه چنان میکنه غلط کرده اون کسی فیلم گرفته انبیا هم لخت می‌شدن می‌رفتن تو بستر زناشویی گفت گفت گفت گفت قوت قلب گفت آقا این مونتاژ کردن الک کردن داغون کردن تو رو الک کردن بالا از اینجای دوستان بذارید ما هم یه ال بکنیم و به ب... از دیده آقای پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک به ماجرای نگاه کنیم که تو کتابشون در این بار مفصل توضیح دادن ایشون گفتن که ساواک برای به دام آقای شجونی و فلسفی و سه تا از روحانیون دیگه‌ای که اون موقع بالای منبر خیلی تیپ مرد خدا و الگوی عصمت و عفت و طهارت و اینا برداشته بودن برنامه‌ریزی داشته که خونه‌ای رو حسابی مثل میکروفون کاری و دوربین گذاری کرده بودن و یه خانم خوشگل مشکل ترگل ورگلی هم خب اجیر کرده بودن بره به عنوان اینکه مشکل شرعی داره به این هاجقاه‌های پاک دامن نزدیک بشه خلاصه‌بکشادتشون تو اون خونه و خانم مرد نظرم در هر پنج مورد به گفته آقای ثابتی موفق بوده هر پنج تا روحانی هم به هر حال رفتن خونه ایشون و اون خانم هم خلاصه‌حسابی ازشون پذیریایی کرده اون‌ها در زمینه یه هدایت این خانومه کم نذاشتن حسابی هدایتش کردن و مشکل فقط این بوده که تو اون خونه یه عالم دوربین و میکروفون و اینا این هدایت کردن آقایون رو ثبت و ضبط کرده خلاصه اینه که آقا ایشون جوری رسما یه جورایی تو این مسابقه اعتراف بکنه که به حال روحانیون هم دل دارن دیگه درست مثل همه ما مگه اخوند کیه اخون هم فرزند مشتا و قبل حسن و حاجی فلان زندگی و... شخصی اون... داره زندگی ممكن. داره زام میگیره سیغه میکنه بله سیغه به خصوص خیلی مهمه در زندگی آخون جماعت مونتاهم مسئله اینه که توی این مصاحبه مصاحبهگر چندین و چند بار تلاش میکنه از زیر زبان حاج آقای شجونی بکشه که این عکس ها بوده یا نه مونتاژشون خیلی شیک و جالب از زیر جواب دادن در میره هر دفعه کرده بودن این هر هرچی کرده بودن نه حاجا مشا... اکثر کرده بودن عرض می کنه الان مونتاژ رو من می گیرم معروف... نبودن واقعیت ببین منیره که به فلسفی نسبت دادن گفتند واقعیت بله خب اینجا الان آقای فلسفی رو قبول کردن که رفته بود پیش اون خانومه منتها بالاخره در مورد خودشون فرمودن که من راجع به خود میخوام می‌خوام بپرسم عکس‌هاش مونتاژ بود یا واقعیت داشت ان شاء الله مونتاژ بوده ای که ایشون اینجا گفتن تو مایه‌های های ان شاء گربه بوده معروفه ها. من از سامی جان میخوام که اون صدای قبلیشون رو یک بار دیگه اینجا پخش کنه آخوند کیه اخون هم فرزند مرتضى و قبل الحسن و حاجی فلان زندگی و... شخصی اون... داره زندگی مام... داره زام میگیره سیغه میکنه بله خلاصخانم آقایون این عزیزان هم هر چند خودشون رو نماینده خدا روی زمین میدونن و ما آدم‌های غیر اخوند رو یک مش انسان جاهل و بی سوادی که باید همه امورات زندگیمونو با اونا چک کنن اما خب اونا هم دل دارن، احساس دارن، آبا تو مثل این, این مورد وقتی پایی خانم خوشگل مشکل بیاد بسند، خب چیزای دیگه هم دارن، حالا بعضیش در این مقال نگنجد. خالا این اینجوری هست، براستین روحانیت هست که نظام مقدس جمهوری اسلامی را زنده نگه داشته.